شام این داستان انسان برای خودش به دنیا نیمده به نام خدا و با سلام ثرقه شما عزیزان همراه همرا سالها پیش مرد زحمت کشی در کنار س زندگی می کرد همسر پیرمرد مرده بود و پسرها ببینو ماده بزرگ شده بودند. دو پسر بزرگتر باید دیگه خوب بودند و خودشون رو عاقل و دانا میپنداشتند اما پسر کوچکتر که دابادر نام داشت مثل دو برادر دیگه فکر نمیکرد. اون به فکر خود نبود و همیشه به دیگران کمک میکرد. برای همین برادرهای بزرگ اون رو دست گفتند و همیشه مسخرش میکردند روزی مرد غریبه‌ای کیسه پول خود رو گم کرده بود. تا از راه میگذشت اون رو پیدا کرد و خود رو به آب آتی تا صاحب کیسه پول رو پیدا کنه. اون یک روز تمام از صبح تا شب با اسب خود به این طرف و اون طرف رفت تا بالاخره اون رو یافت و کیسه پولش رو پس داد. وقتی برادرهایی بزرگتر ماجرا رو شنیدند، به اون خندیدند و گفتن چه پسر احمقی خوشبختی در خونه اون رو زده ستاره اقبالش دمیده ولی اون برای فرار از خوشبختی احس میتازن و دنبال صاحب اصلی کیسه پول میگرده ما اگر به جای اون بودیم زندگی رو از این رو به اون رو, اون رو بعضی از آدم ها هیچ وقت نمیخوان چیزی بگیرن. روز دیگه ای گوزفندی به حریم چادرها اومد و دوادرجی اونقدر گشت تا صاحبش رو یافت و گوزفند رو به صاحبش برگردوند. وقتی به چادر بازگشت برادرش با اون دعوا کردند که خاک مرسرت تو یک احمق بیکله استی. بهتر نبود اون حیبون رو میکشتیم و کواب میکردیم تو هیچ فرق من نمیشی. روزی از روزها برادر بزرگتر به اون یک سکه نغره داد و گفت به بازار برو و هر چی که دوست داری برای خودت بخر وقتی دابادر رفت برادرها خندیدند و یکی از اونها گفت ببینی این پسر کنن برای خودش چه چیزی میخره برادر دیگه گفت حتما یکیسه چایی مونده میخره گروه که شد دابادر به خونه برگشت برادرهای بزرگتر با پوزخم دو کنایه پرسیدن برای خودت چی خریدی؟ اون رو به منشون بده داوادورجی در جواب گفت چیزی نخریدن تمام روز رو در بازار راه رفتن ولی چیزی که به کار من بخوره پیدا نکردن این هم سکه شما صدای اعتراض و سرزنش برادرها بلند شد ای احمق کودن ما دوست نداریم با چنین برادری نادانی زندگی کنیم زود از چادر ما بیرون برو داوادورجی اعتراضی نکرد و تسلیم گرفت از خونه ای که جز تحقیر و تمسخر چیز دیگه ای نداره بره پدر پیرو سالفادش خیلی ناراحت شد و اون در حالی که عشق بریخت به برادرهایی بزرگتر گفت چرا اون رو از خونه بیرون می کنید اون به کجا بره اون کوچی که بود در غربت گوان میشه شه دابا دست های پیرو چروکیده پدرش رو در دست فشرد و گفت نگران نباش پدر شنیدم در جنوب پیرمرد دانایی زندگی میکنه که جواب تمام سوالهای عالم رو میدونه من پیش اون میرم تا بپرسم چطور میشه بدون چادر و رمه و تنها با یک اسب زندگی کرد بعد از اونها ها خدافزی کرد و به سوی سرنوشت راه افتاد راه زیادی رفته بود که به یک روستا رسید روستا قمگین و مثل یک گل پشماده بود او در مقابل چادرها های زیادی رو دید که و و بیرمک روی زمین خشک خواهده بودند. عصبها بی حال روی پحلول لمیده بودند و مردم خسته با قمگین به یکدیگه نگاه میکردند و انتظار مرگ رو میکشیدند بابادورجی پرسید اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یکی از مردم که نفسش در نمیومد جواب داد یک ماهی هست که نهر آب این روستا و ما آب نداریم. زنی که به زحمت سرش رو روی گردن از داشته بود گفت زندگی کردن بدون طلا آسونه ولی بدون آب غیر ممکنه. به زودی همه ما خواهیم مرد. دوادرژی رو به اونها کرد و گفت من به دنبال یافتن خوشبختی هیان دارم به نزد پیرمرد دانا برم. اگر اون رو پیدا کنن، پاسخ مشکل شما رو هم از اون خواهم پرسید. او اندرا گفت و به سفرش ادامه داد. راه سخت و طولانی بود. قبل گروه غروب آفتاب چادری رو بالای تپیدید. دید. بسوی چادر رفت تا خرسگی در کنه. دختری زیبا و پیرزنی بلند آمد از چادر بیرون آمدند. دوادارجی به پیرزن تعظیم کرد و پیرزن نیز در کاسه اون تعظیم کرد اما وقتی که به دختر تعظیم کرد دختر هیچ حرکتی نکرد دامادو ناراحت شده شد و سرش رو پایین انداخت و پیرزن گفت از دختر من ناراحت نشو اون وقتی به دنیا آمده نابینا بوده اون هیچ رنگ شادی و روشنایی زندگی رو ندیده پس از اون صورت پرچینو چون که پیرزن پر اشک شد با گفت گریه نکن من در حال رفتن به پیش پیرمرد دانا هستم از اون حتما میپرسم که دخترتو چگونه میتونه بینایی خودشو به دست بیاره پیرزن که هیچ امیدی به درمان دخترش نداشت از اون تشکر کرد جوانه که ما به سفرش ادامه داد چند شبانه روز بود که سواروپ پیاده راه میبید و خاک جاده ها رو می خورد روز هفتم به قاری رسید که در دامنه کوهی بود این قار محل زندگی پیرمرد دانا بود داخل شد و سلام کرد نیمی از چهره پیرمرد در تاریکی و نیم دیگرش در روشنایی بود اون رو که دید پرسید چه حادثه ناگواری تو رو به اینجا کشونده اوادورژی گفت اول اینکه در یکی از روستاها بین راه نهر آب خشک شده و مردم و حیوانهای اون دیار از بیابی در حال مرگ هستند و دوم اینکه بالای تپهای دختر زیبا با مادرش زندگی میکنه که از هنگام تولد نابینا بوده این دختر در شانزده سالگی از عمرش نه روشنایی دیده و نه شادی داشته لطفا بگو چیکار باید کرد تا آب به اون نهر دوباره جاری بشه و اون دختر بینایی خودش رو به دست بیاره؟ پیره دانا گفت مردم اون روستا باید به بالا دست نهر برن. اونجا متوجه میشن که چگونه میتونن نجات پیدا کنن. اون دختر هم بینایی خودش رو به دست میاره به شرط اینکه جوانی که مقدر شده با اون ازدواج کنه دست چپ اون رو لمس کنه. بابادورجی گفت: "مچکرم پیرمرد دانا." پیرمرد دانا حرف اون رو قطع کرد و گفت: "اگر بتونی تا فردا قبل از طلوع آفتاب، پیمون منو به اونها برسونی، اونها نجات پیدا می‌کنن، وگرنه همه چیز مثل قبل باقی خواهد موند." بابادورجی با پیرمرد دانا خداحافظی کرد و آماده شد تا برگرده. اون خوشحال بود از اینکه اومدن در این راه در این راه دراز و سخت نبوده از پشت سر صدای پیرمرد رو شنید راه درازی در پیش دارید. من این اسب را به تو میدم که زودتر برسی دابادورجی اسب ای رو دید که برای اون آماده شده بود و در انتظارش سوم بر زمین بکوبی. دوباره از پیرمرد تشکر کرد و سوار بر اسب شد و راه بازگشت رو در پیش گرفت تن جاده زیر سوم اسبش کوبیده میشد و اون تون تر از باد به سوی مقصد میتاخت راه زیادی رو کرده بود که ناگهان به یاد آورد فراموش کرده از بید پیرمرد دانا بپرسه که چگونه بدون چادر و رمه و پول میتونه زندگی کنه افسار اسبش رو کشید و نیم جاده ایستاد میخواست برگرده اما اندیشید اگر خاطر سوال خودم برگردم نمیتونم پیغام اون رو قبل از تولو آفتاب به اونها برسونم در نتیجه دختر همونطور نابینا میمونه و مردم از بیابی خواهند مرد بنابراین تصمیم گرفت دفعه دیگهای از پیرمرد درباره مشکل خودش سوال کنه دوباره به راه خودش ادامه داد هنگامی که به چادر پیرزن رسید پیرزن و دخترش رو دید که از اون چادر بیرون مدند و گفتن پیرمرد دانا رو دیدی اون چی گفت دامادورجی از اس پایین اومد و گفت گوش کنی. پیرمرد گفت اگر مرد جوانی که مقدر شده با اون ازدواج کنه دست چپ این دختر را لمس کنه اون بینانگی خودش رو به دست میاره پیرزن گریه کردن گفت از تو ممنونم اما نمیدونم که دست چپ و کدونه کدومه دامادورجی در مقابل دختر ایستاد و گفت این دست چپ اونا و دست چپ دختر رو لمس کرد ناگهان دختر جوان از شادی جیه کشید و گفت میتونم ببینم خدای بزرگ چشم من خوب شده باورم نمیشه من دارم دشت و درخت و آسمان رو میبینم همه چیز و میتونم ببینم چقدر خوشحالم اونجا مادر خود رو به آغوش گرفت و از اینکه میتونست برای اولین بار اون رو ببینه عشق در چشماش حلقه زد داوادرجی پا, پا شد میخواست هرچه زودتر بره تا قبل از تولون آفتاب پیام پیرمرد دانا برسونه ناگهان چیزی به یاد پیرزن اومد رو به داوادورجی کرد و گفت تو گفتی اگه شوهر آینده دخترم دست چت اون رو لمس کنه دخترم بیناییش رو به دست میاره حالا اون به وسیله تو خوب شده پس تو باید همسر اون بشید داوادورجی که اصلا به این موضوع فکر نکرده بود گفت من پیرزن گفت بله تو تو در تقدیر دخترم بودی تو باعث شفای اون شدی پیش ما بمون ما چادر خوبی داریم تعدادی هم گاو و گوسفند داریم با موندن در اینجا هر روز غذای چرب و نر میخواهی اخورد داوادورجی دو بود هم دختر رو دوست داشت و هم برای کار مهمی از اونجا باید میرفت گفت من نمیتونم پیش شما بمونم باید قبل از ترو آفتاب به روستا برسم که نهر آبشون خشکیده. در غیر این صورت مردم و رمه های اون دیار از بیعآبی هم مرد دختر زیبایی پیرزن که حالا با دیدن داوادورجی دل به اون بسته بود گفت من تو رو می کنم حالا که مجبور هستی بری من رو هم همراه خودت ببر داوادورجی قبول کرد اون رو بعد پشت انس میشوند و از پیرزن خدآفظی کردند و راه افتادند چند ساعت بعد به روستا رسیدند مردم رو دیدند که بی حال و بیرمق در چادرهاشون دراز کشیدند و منتظر مرگ بودن داوادار همونطور که بر پشت اسب سوار بود فریاد زد ای مردم من کلید حل معمای شما رو پیدا کردم شما باید به بالای دست نهر برید و ببینید چی بیش اومده فقط در این صورت میتونید از این مصیبت نجات پیدا کنید یکی از ریست فیلون با صدای بینمای گفت ما قدرت نداریم از جانون بلنشیم همونطور که میبینی ما به مرگ محکوم شدیم گاوادورجی گفت بسیار خوب من این کار رو براتون انجام میدم اونجا اسبش رو راهی کرد و در مسیر نهر که مانند کف دست خشک شده بود حرکت کرد وقتی به بالای نهر رسید فیل مرده رو دید که جسدش میون نهر افتاده بود جلوی جریان آب رو گرفته و آب در مسیر دیگری در حرکت بود گاوادورجی به سختی و با کمک اسفش فیل مرده رو جابجا کردن و آب با شتاب فراون در مسیر اصلی همیشه جریان پیدا کرد اونها نفس راحتی کشیدن دابدار به نامزدش گفت حالا باید به نزد پدر و برادرمون بریم. اونها باید ببینن که من چه همسر خوب و زیبایی دارم. اونها در سر راهشون از رودخانه عبور کردند. کردن وقتی اون طرف رودخانه رسیدن از اسبشون بیاده شدن تا استراحت کنن ناگهان دوادرجی ماهی نغری رنگی رو دید که موج رودخونه اون رو به ساحل پرد کرد و بی حال روی شنها ها افتاده بود چه این شد؟ ماهی رو از روی زمین برداشت رو به رودخونه برگردیم ماهی که جون تازهی گرفته بود کمی شنا کرد و به سطح آب اومد دوادرجی رو دید که از لب رودخونه دور میشه ماهی به زبون آرامه فریاد کشید صبر کن همونجا بیست و از جا تکون نخور دوادرژی ایستاد و به عقب نوا کرد. سوار رو دید که با اسب سیاهش از رکیمه بیرون امرد و خطاب به اونی گفت فرمانروای روای دریا تو رو به قصر خودش دعوت کرده. لطفا همراه من بیا. دوادرژی گفت فرمانروای روای دریا؟ چرا باید نظرون برم؟ سوار گفت چرا میترسی؟ به نظر نمیاد آدمه ترس باشی این گفت من از کسی ترس ندارم باشه همراه تو میاد اصلا دوست دارم ببینم فرمانروای دریا چگونه زندگی میکنه داوادرجی از نامزدش خواست که سوار به اسبش بشه و پیش پدرش بره و در اونجا منتظر اون بمونه پس از اینکه دختر دور شد این به رفت پشت اون مرد اسب سوار نشست و اسب به زیر آبخیز برداشت و در یک چشم به هم زدن به قصر فرمانروای دریا رسیدند. فرمانروای دریا با شتاب به سوی اون اومد. در دست اون یک ماهی کوچیکی بود که بالاهای قرمزی داشت. فرمانروا با داوادارژی احوال پرسی کرد و گفت سلام دوستانم. از تو متشکرم که دختر عزیز من رو نجات دادی. هنوز جمله فرمان روا نشده بود که ماهی کوچک به دختری زیبا تبدیل شد که پوست صورتش نقرهای و موهاش به رنگ قرمز و تلایی بود بوادورجی محو تماشای دختر بود که فرمانروا گفت تو پاک و شرید هستی از تو میخوام که با ما زندگی کنی من دخترم رو به همسری تو درمیارم چادری بزرگ و یک گله اصو دریایی به تو میدم و خدمتکارانی در اختیارت میگذارم که همگی با وفا و موتی باشند دابا در جواب گفت از شما متشکرم اما من بیرون از این آبها برای خودم آیندهی دارم. نامزد خوب و مهربونی دارم که در خونه پدر من منتظر منه و من باید برای اون دو آساییش و رفا تهیه کنم. فرمانروای دریا گفت بسیار خوب. پیش از این تو رو معطل نمی کنم اما برای هدیه خداحافظی سه چیز به تو میدم که امیدوارم به کار تو بیان. اول این هدیه این کلاهه که اگر اون رو به سرت بگذارید رو نمیبینه دومین هدیه یک چکش تلاییه که اگر هفت مرتبه اون رو به زمین بکوبید یک چادر تلایی ظاهر میشه این پوستین سومین هدیه منه که اگر اون رو بپوشی و سه مرتبه تکونش بدید سه ساعت پشت هم بارون خواهد اومد بعد فرمانروای دریا دستور داد داوادرجی رو به ساحل برگردونم او دوباره بر روی اسب سیاه نشست و به فاصله یک نفس کشیدن کنار رودخونه بود. به نحوی اینکه از اسب پایین اومد اسب نپدید شد. انگار نه انگار که اسب اونجا بوده. باید راه میافتاد. پوستین دوریشونه هاش انداخت و کلاه نامرئی کماندر رو در آسین هاش پایین کرد و چککش طلایی رو به بغل گرفت و با سرعت حرکت کرد. نزدیک غروب هنگامی که خوشید مانند یک نون گرم و تازه در آسمان پیدا بود به نزدیکی خونه رسید. کلاهش رو به سر گذاشت و قیف شد. هیچ کسی اون رو نمی دید و به اون سلام نمی کرد. در کنار چادر قدیمیشون چادر جدید رو دید. همونطور که به اون چادر نزدیک شد صدای یکی از برادران بزرگترش رو شنید که به دیگری چنین می گفت. دیگه زندگی در این دشت خوشید. علف خور و گله های دوستانش و شطور هم تلف شدند فقط اون اسب زنده است که نامزد برادر ابله اون با خودش آورده ما باید با اون اسب اینجا بریم برادر دیگه جواب داد یعنی ممکنه که چادر و پدرمون رو به همراه اون نامزد ابله به روی یک اسب سوار کنیم برادر و دکتر با صبونیه جواب داد چرا باید پدر رو با خودمون ببریم اون الان اینقدر پیر شده که حتی نمیتونه گوسفندی رو به چرا ببره همینطور نامزد اون احمق رو میگذاریم همینجا بمونن وقتی اونها خوابشون برد اسب و چادر رو بر برمیداریم و به سمت رودخونه میریم داوادورجی خیلی ناراحت شد اما برای های بردنش مزاحمتی ایجاد نکرد بعد از اینکه اون دو برای همیشه رفتن به داخل چادر قدیمی رفت هیچکس اون رو نمیدید و صداش رو او کنار درب چادر خوابید و خودش رو زیر پوستین پنهون کرد. هنگام سحر از جا برخاست و کلاه نامریش رو از سر برداشت. پدر در نمزدش با دیدن اون یکی خوردند و از خوشحالی اون رو به آغوش کشیدند. موقعی که برای نوشیدن میشیدن چایندش پدر گفت چه خوب شد که اومدی. و از اما خیلی بد شده. دو ماه میشه که بارون ندارید و علفها زرد و خوش کردند. ما باید خیلی زود از اینجا بریم. از برادرها میخوام که آماده بشن. دمادر دست اون رو گرفت و دوباره به زمین نشون گفت نیازی نیست که بری. اینها شب قبل از اینجا رفتند و شما رو جا گذاشتن تا در اینجا بمونید و بمیرید. اونها همه چیز رو حتی اسب من رو هم با خودشون بردن. پدر آه غمگی میکشید و به گوشه خیره شد. کاش، کمی نخ برای تعمیر چادر گذاشته بودن به وضع این چادر پوسیده نگاه کن گاوادورجی گفت نگران نباش پدر من به تو کمک خواهم کرد اون از چادر بیرون رفت و هفت قدم برداشت و چکش چک تلایی رو بیرون آورد و هفت مرتبه به زمین ضربه زد در مقابل های ناباور اونها یک چادر بزرگ و نو ظاهر شد که با نور خیره کنندهای میدرخشید تشمان پدر از خوشحالی برگی زد و روشن شد. ولی بعد گفت چه فایدهی داره که ما چادر نو داشته باشیم در حالی که همسایه های ما همه از اینجا رفتن. نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. چون نه چیزی برای خوردن ما وجود داره نه برای چرای گله ما. دواراجی سکوت کرد و چاره مشکل رو هم پیش اون بود. اون پوستین خودش رو پوشید و سه مرتبه تکون داد ناگهان آسمان قرشی کرد و باران سنگینی گرفت سه ساعت پشت سر هم بارون بارید علفها رو به سرعت سبز کرد و قتع کشیدند و گوسفندان حال از جا برخواستند و گاوها معنه کردند و به چرا رفتند پدر با خوشحالی خدا رو شکر گفت و آرزو کرد کاش از پند داشتیم هنوز از آرزوی پدر زمان زیادی نگذشته بود که صدای پای عصبی به گوش یک اسب وحشی از اعماق دشت به سوی اونها میومد اسب خود رو به داوادرجی رساند و پوزش رو به صورت اون مالی روز بعد که برادرها بیرمق و نیمهشون برگشتند گفتن اسب اونها رو در دشت به زمین انداخته و به تنهایی برگشته اونها هم مجبور شدن چادر و وسایل خودشون رو همونجا بگذارند و پیاده به خونه برگردن اونها از کار خودشون پشیمون بودند و میخواستند دوباره کنار خانواده خودشون زندگی کنند دابادورجی به اونها گفت بسیار خوب با ما زندگی کنید برای همه جا هست پدر اخ کرد و گفت تو میخوایید بگذاری که اینها اینجا زندگی کنند؟ دابادورجی با مهربونی گفت بله پدر پدر اساش رو برداشت تا پسرهای ناسپاس خودشون رو کتک بزنه در حالی که میگفت بسیار خوب بلی اونها باید اول درس مهمی رو یاد بگیرد انسان برای خودش به دنیا نیومده بلکه به دنیا اومده تا در خدمت دیگرون باشه اگر شما به دیگرون نیکی کنید اونها هم به شما نیکی خواهند کرد بله دوستان عزیز مثل مثل ما ایرونی ها که میگیم تو نیکی می در دجلن که ایزد در بیابانت دهد باز سفات و متشکر از شما عزیزان که در این سفر هم همراه من بودید. امیدوارم با قصده بعدی هم با من هم سفر بشید. شما رو به خدای بزرگ میتوارم و براتون آرزوی سلامتی بکنم. مراقبه خوبی های خودتون باشید.